بیایید حف شرط اول جواب حف شرط یا جواب تجنب مزاح و الا تشقط حیبتو که این مثال اولیست ده الخسامه و الا یانالک شربو ذرني و الا اعتب عليك سه مثال اولی رو دقت کردید ما اینجا فیل شرتمون حاضر شده فیل شرتمون چه شده می‌بینید که فیل شرط تحس شده یا نمی‌بینید؟ در این جمله دقیقی جمعه در از شنیه تجنب المزاح از شخی دوری کن و این لا تتجنب و اگر دوری نکنی فس قطعه باتو دیدید که فیل چی شده حاش شده بقیه مساله این جوری اند بقیه مساله هم این جوری اند ده الخصامه و این لا تدع یا نلک شروحو زرنی و الا اعتب و الا تزرنی اعتب علیک میبینیم که شرک چی شده شرک شرک وجود داره که اگر که اگر این که اگر این شرطیه در لا ادغام شده بود این الا شرطیه نیست این این الله هست ولی ادغام شده تجنب المضح و این الله این در اسیات بالی پس روانی که قاعده نوات شرح مینو گه نگه جوز و انیوح ظفه فعل و بعد این المدغمتی فی الله نافیه جائز هست که فیل شرط حصف بشه بعد از این مدغمه در لا نافیه بعد از اینی که در لائن شده؟ ادغام شده است اما قاعده لو از پند کنید در سم مثال بعدی 4 و واجب است که جواب هست بشه کدو شماره 4 رو, رو درقت کن آوردم که روی قاعده بدیم ستن دم این ظلم انت جبانون ان خربت انت ان قلت الحق شجاع درس مثال آخری واجب است که جواب حذف بشه جوابی شده بله مثلا ببینید شتن دم ان ظلمت خب ان ظلمت میگیم ظلمت اسم این هست ولی جوابش هست شما میبینید جوابشو رو نمیبینید انت جی بالون این کذابتا کذابه اسمشی چی شرطشی جابش کجای؟ جوابش موقدام نیست. نه. انت این قول تل حقشو جاآن این قول تل حقشو جاآن. شجاآن جام. می‌بین نه شجاآن مبن... جام نیست. شجاآن جمله هست. شجاآن جمله نیست. این قول تل حق فانتشو جاآن می‌تونیم بگیم اینجا در این سه مثال آخری میبینیم که شرط اومده ولی جواب نه اومده جواب این سوال در قاعده ال50 هست میگه یجب ان یحذف الجواب و دلیل است که جواب چه بشه حذف شود اذا سبق او تنفه زمانی که قبل از شرط اومده باشد زمانی که قبلش اومده باشد یا احاطه کرده باشند شرط رو چه؟ مایدلو علیه کلمه ای که دلالت بر جواب کرده باشد کلمه که دلالت بر بر جواب کند مثلا موقعی که میگیم ستندم انغلمتا جواب ما چونین هست؟ ستندم, فس ستندم. فس ستندم. اون کلمه‌ای که یا مثلا ان تندم اون کلمه‌ای که دلالت بر میکنه می‌کنه قراسیو بده است آری هست ستندم هست رو داشته باش جوان رو کامل بخون میگه کتابشوا سقطنده یا سقطندمو درام بر خوب اینجا دقتی داشته باشید یجب جمله رو دقت کنید یجب ان یحذف الجواب واجب است که جواب حسم بشه واجب است که جواب چی بشه الا سبقه او وقت تناسحه این با هدا ما يدل عليه اینو you know? خراب نکنین اگر خراب بکونید خراب معنی میشه خراب معنی میشه قاعده عوض میشه میگه واجب است که جواب حث بشه اگر اینجوری معنی کنیم یذ سبقهو یعنی ان جواب قبل ازون بیاد خب اگر اینجوری معنی کنیم پس که حث نشده ما قبلش اومده جواب حث نشده حقیقت میمونه منطقی باشه پس اینجوری معنی کنیم واجب است که جواب حس بشه زمانی که قبل از شرط آمده باشد ما یدلو علیه کلمهی که دلالت بر جواب بکنه اهمیده الان؟ بس بریم بیاله تا و کان فعل الشرط ماضیه و شرط ماضی باشه و فعل هم چی باشه؟ فعل شرط ماضیه ظلمت ماضیه کذبت ماضیه قولت فهمیدید نه شما ننی توانید چوبه ترانی کنید در این کتاب بزرگوار. درکی بیش؟ انت میشه مبتدا این قلت الحق شجاع این میشه حرف شرط این شرطیه قلت جوابش هست محلن متزوم الحقه مفهول بهی چون تا در قلصه فائل هست شجاعون الان میگم این قلت الحقه شجاعون فانت شجاع یک <تصفيق> جمله خبریه جمله اسمی هست که جواب این هست جواب ما قابلا خوندیم دیگه این واجبی نیسته ی حسف جواب چی؟ حسف جواب واجبی نیست واجبی بره حسف جواب اینجا نیست وجود نداره جواب ما میگیم حسف داری مقدرش میکنیم فا انت شجاعون چرا اینجوری گفتیم فا انجا جواب حسف از انتایی که ما قابلش اومده دلالت بر اون میکنه که چیه اون جواب این انت قلت الحق فا انت شجاعون فهمیدید؟ بالی جان شجا جواب نیست یعنی اقناع ایجاد کردن ما قبل و ما بعدش اومده باشد کلمه خوب اومده است ان قلته انت قبلش اومده است شجاع اومده بله این انت در مثال شیشم دقت کن در, در مثال شیشم اکتناف هست یعنی چی؟ یعنی هم ما قبلش هم ما بعدش چی اومده است آقای شیخ سحیل گفته بود اگر قبل از شرط کلمه اومده باشد که دلالتی بر جواب کنه یا اکتنافش اکتنافش معنای مثال شیش میبینیم انت قبل شما هست و, و آخرش و شجاعون بعد فعل شرط مدهس لذا جواب حس حس لذا جواب كيف حس حس انت شجاع ان قلت الحق ان قلت الحق فانت شجاع انت جبان مش مشار... شجاع انت جبان خبر بابط ها شرط فيبشي. ان مش شرط كذبته مش فعل شرط دوباره فا انت بانون جوابش هست که حس شده است فا انتجه بانون چیه شست؟ جوابش هست که حس هست. بله حس جواب شرط وجوبی هست زمانی که قبل از شرط کلمه ای اومده باشد که دلالت بر جواب بکله و فعل فعل مازی باشه و فعل شرطی باشه این دوتا شرطو آورده بود برای خسب بود